بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد هلال اید به دور قدح اشارت کرد سباب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده ایش راز یارت کرد مقام اصلی ما گوشه خراباته خداش خیر دهادان که این امارت کرد به های باده چون لعل چیست جوهر عقب بیا که سود کسی برد که این تجارت کرد نماز در خمه آن عبروان محرابی کسی کند که به خون جگر تغارت کرد فغان که نرگس جمع شیخ شهر امروز نظر به دورد کشان از سر حقارت کرد به روی یار نظر کن زدیده منت دار که کار دیده نظر از سر بسارت کرد حدیث عشق زحافظ نه از اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد